پندار باطل زمان را کنار بگذار ظاهرا جدای کردن خود از ذهن ممکن نیست ما کاملا غرق ذهن شده ایم چگونه می‌خواهید پرواز کردن را به ماهی بیاموزید کلید اینجاست کنار گذاشتن پندار باطل زمان زمان و ذهن جدای ناپذیرند اگر زمان را از ذهن بگیری ذهن متوقف می‌شود مگر آنکه تو بخواهی از آن استفاده کنی یکی انگاری خود با ذهن افتادن به دام زمان است وسواس زندگی کردن در خاطرات گذشته و امیدهای آینده این وسواس حسرت گذشته ها و دقدقه آینده را می و تو را نسبت به زیستن در لحظه مقتنم حال بیرقبت می کند این وسواس به آن دلیل زاده می شود که گذشته به تو هویت میبخشد. و آینده به تو وعده کامیابی و رستگاری می دهد. هر دوی اینها پندار باطلند اما بدون احساس زمان چگونه می توانیم در این دنیا زندگی کنیم؟ بدون احساس زمان دیگر هدفی باقی نمی ماند که برایش بکوشیم در این صورت دیگر حتی خودم را نیز نخواهم شناخت زیرا این گذشته من است که مرا کسی می کند که اکنون هستم من فکر میکنم زمان چیز خوبی است و ما باید یاد بگیریم از زمان عاقلانه استفاده کنیم و آن را هدر ندهیم زمان اصلا چیز خوبی نیست زیرا پنداری است باتل آنچه که تو خوب و با ارزش میدانی زمان نیست بلکه چیزی است بیرون از زمان یعنی لحظه ی حال لحظه ی حال است که واقعا ارزش دارد هرچه بیشتر معطوف به زمان شبیه گذشته و آینده از لحظه ی حال دورتر میفتی. لحظه لحظه‌ای که ارزشمندترین موهبت الهی است چرا لحظه ی حال تا این اندازه ارزش دارد ابتدا به دلیل آن که لحظه ی حال تنها چیز موجود عالم است لحظه ی جاودانه ی حال فضایی است که زندگی واقعی تو در آن همچون توماری باز میشود لحظه ی حال تنها چیزی است که تغییر نمی کند و همیشه لحظه حال میماند. زندگی در لحظه حال اتفاق میافتد. هرگز زمانی نبوده است که زندگی تو در لحظه حال نباشد و هرگز زمانی نخواهد بود که زندگی تو در لحظه حال نباشد. دومان که لحظه حال تنها امکانی است که میتواند تو را از حصار ذهن بیرون ببرد. لحظه حال، تنها چاره تو برای دست یافتن به بیزمانی و بیشکلیست. قلم رو هستی. برای لحظه حال چیزی وجود ندارد. آیا گذشته و آینده به اندازه لحظه حال واقعیت ندارند؟ آیا گذشته و آینده در بعضی مواقع واقعی تر از لحظه حال نیستند؟ به هر حال گذشته است که ما را شکل داده و اندیشه و رفتار کنونی ما را ساخته است آیا هدفهای آینده ما هستند که اعمال ما را در لحظه حال تعیین می تو هنوز معنای سخن مرا نگرفته ای زیرا میکوشی آن را با ذهن خود بفهمی ذهن نمیتواند این نکته را بفهمد تنها تو میتوانی این نکته را بفهمی لطفا فقط گوش بسپار آیا هرگز چیزی را بیرون از لحظه حال تجربه؟ فهم و یا احساس کرده ای؟ آیا فکر میکنی هرگز بتوانی چیزی را بیرون از لحظه حال؟ تجربه کنی و یا بفهمی آیا ممکن است چیزی بیرون از لحظه حال اتفاق بیفتد؟ پاسخ معلوم است، اینطور نیست هرگز چیزی در گذشته اتفاق نیفتاده است همه اتفاقها در لحظه حال میفتند هرگز هیچ اتفاقی در آینده نمیفتد همه اتفاقها در لحظه حال میفتند آنچه را که گذشته می‌خوانی چیزی نیست مگر ردپایی از ها که در ذهن کشیده شده است چیزی که زمانی لحظه ی حال بوده است با به یاد آوردن گذشته در واقع اثر خاطری را در ذهن فعال می‌کنی و این کار را در لحظه ی حال انجام می‌دهی آینده نیز چیزی نیست مگر لحظه ی حال خیالی آینده فرافکنی ذهن است وقتی آینده فرا می رسد به عنوان لحظه ی حال فرا می رسد. وقتی درباره آینده فکر می کنی در لحظه ی حال است که به آن فکر می کنی. گذشته و آینده واقعیتی مستقل ندارند. همانطور که ماه هیچ نوری از خود ندارد و تنها نور خورشید را منعکس می میسازد. گذشته و آینده نیز انعکاس کمرنگ نور، نیرو، و واقعیت لحظه جاودانه حالند واقعیت گذشته و آینده آریتی است آنها واقعیت خود را از لحظه حال قرض گرفتند معنای سخن من با ذهن فهمیده نمی شود. به محض آنکه معنای سخن مرا بفهمی آگاهی تو از ذهن به هستی و از زمان به حضور منتقل می شود. آنگاه ناگهان احساس می کنی که همه چیز زنده است و از خود انرژی سادر می کند. آنگاه سرچشم گرفتن همه چیز از هستی را تجربه می کنی. در بعد معنوی انسان در شرایطی استراری که جان ما به خطر میافتد انتقال آگاهی ما از زمان به حضور در لحظه ی حال خود به خود اتفاق میافتد هویتی که گذشته و آینده ای دارد به طور موقت عقب نشیند و جای خود را به حضور در لحظه حال می‌دهد در این شرایط هر واکنشی که لازم باشد به طور طبیعی و خود به خود از تو سر خواهد زد این واکنش ها از آگاهی تو در لحظه حال سرچشمه می‌گیرند دلیل اینکه بعضی از آدمها خطر کردن را دوست دارند همین است مانند سخر نبردان، قهرمانان مسابقات اتومبیل رانی و غیره خطر کردن آنها را به لحظه حال می کشاند. گرچه ممکن است آنها خود دلیل ماجراجوییشان را ندانند خطر آنها را به لحظه حال می کشاند و از بند زمان دغدغه ها، حسرت ها،, ها، و مشکلات می رحاند. آنها احساس می کنند که برای لحظاتی توانستند بار هویت و شخصیت را زمین بگذارند و سبک شوند در آن لحظه های حساس و پرمخاطره اگر آنها حتی یک ثانیه از لحظه حال بیرون بروند ممکن است جان خود را از دست بدهند بنابراین در لحظه حال میمانند اما برای حضور در لحظه حال لازم نیست از صخری بلند بالا بروی و یا در مسابقه پرخطر اوتوموبیل شرکت کنی تو میتوانی همین حالا در لحظه حال حضور پیدا کنی از زمانهای دور آموزگاران بزرگ معنویت به لحظه حال به عنوان کلیدی برای باز کردن در بعد معنوی انسان یاد کردند علا رغم یاداوری آن بزرگان این نکته به عنوان رازی نهفته باقی مانده است بدیهی است که مضمون جرف این نکته اساسی را در کلیساها و معابد آموزش نمیدهند. اگر به کلیسایی بروی میشنوی غم فردا را نخورید زیرا فردا غم‌های خاص خود را دارد یا کسی که به عقب مینگرد شایسته ملکوت آسمان ها نیست یا ممکن است درباره گلها بنویسی که آنها دغدغه فردا را ندارند و با دلاسودگی در لحظه بیزمان حال زندگی می کنند و از دست خداوند روزی میخورند کمتر به جرفای این سخنان توجه شده است. کسی توجهی ندارد که این سخنان را باید زندگی کرد. کسی توجهی ندارد که فهم عمیق این سخنان میتواند موجب دیگرگونی بنیادی روح شود. تمامی حقیقت مکتب زن در حرکت بر لبه تیغ لحظه حال نهفته است. چنان با تمام وجود حضور پیدا کنی که دیگر هیچ مشکلی هیچ درد و رنجی و هیچ چیزی که وجود حقیقی تو نیست نتواند در تو باقی بماند. در لحظه حال، در لحظه غیبت زمان همه مسائل و مشکلات تو محو می شود. رنج محتاج زمان است نمی نمیتواند در لحظه حال دوام بیاورد یکی از استادان بزرگ طریقت زند برای اینکه توجه شاگردان خود را از زمان منصرف کند اغلب انگشت نشانه خود را رو به بالا می گرفت و میپرسید در این لحظه حال چه چیزی کم است پرسشید گزنده که برای آن نمی توان پاسخی در ذهن پیدا کرد زیرا این پرسش توجه تو را عمیقاً معطوف به لحظه حال می‌کند یکی دیگر از پرسش‌های بنیادی طریقت زن این است اگر حالا نه پس کی لحظه حال محل توجه عرفان اسلامی نیز بوده است مولانا می‌گوید صوفی ابن الوقت باشد همین عارف بی همتا در مصنوی خیش می‌گوید که گذشته و آینده پرده و حجاب خدایند. باید گذشته و آینده را آتش بزنی تا هم نشین لب و آواز خداوند شوی هست هوشیاری زیاد مامزا ماضی و مستقبلت پرده خدا آتش اندر زن به هر دو تا به کی پرگره باشی از این دو همچون نی تا گره بانی بود همراز نیست همنشین آن لب و آواز نیست در جای دیگر میگوید همنشین گروهی برگزیده بودم که مراقبه میکردند، و ذهن یعنی خود دروغین جدا شده بودند در آن لحظه ی حال بود که از زمان رستم زمان جوان را پیر میکند و ضد تراوت و شادابی است همه تلوین ها و درد و رنج ها از زمان برمیخیزد، اگر از زمان رهایی پیدا کنی، از تلوینها و درد و رنج ها رها می اگر از گذشته و آینده بیرون بیایی، محرم آن بیچون و بیشکل و بیزمان می ساعتی با آن گروه مجتبا، چون مراقب گشتم و از خود جدا، هم در آن ساعت، ز ساعت رست جان، زان که ساعت پیر گرداند جوان جمله تلوین ز ساعت خواست است، رست از تلوین که از ساعت برست چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی چون نماند محرم بیچون شبی مایستر اکارد عارف بزرگ مسیحی نیز میگوید. زمان همان هجابی است که مانع رسیدن نور خداوند به ما میشود در راه رسیدن به خدا هیچ مانعی سعب العبورتر از زمان نیست دسترسی به نیروی لحظه حال لحظه پیش وقتی درباره جاودانگی لحظه حال و وهمی بودن گذشته و آینده سخن می گفتید من داشتم از پنجره به آن درخت وسط حیات نگاه می کردن. من آن درخت را قبلا هم بارها دیده بودم اما این دفعه آن را کاملا متفاوت می‌دیدم این دفعه برگ‌هایش رنگتر و زنده‌تر می‌دیدم گویی بعدی تازه به ابعاد درخت اضافه شده بود نمی‌توانم این بعد تازه را توضیح بدهم نمی‌دانم چطور اما نسبت به حقیقتی نامشهود در درخت آگاه شده بودم روح درخت را می‌دیدم به طریقی من هم پاره‌ای از این روح بودم حالا میفهمم که تا کنون آن درخت را ندیده بودم فقط تصویری یک بعدی و مرده از آن داشتم حالا وقتی به آن درخت نگاه میکنم چیزی از آگاهی را در خود احساس میکنم اما این احساس را نیز دارم که آن آگاهی فرار است و از چنگ میگریزد میبینید این تجربه به گذشته عقب نشینی کرده است آیا تجربه های از این است ناپایدار و گذرایند تو برای لحظه از زمان رها شده ای. تو به لحظه حال منتقل شده ای و بنابراین درخ را بدون هجاب یا صافی ذهن دیدی. در آن لحظه آگاهی از هستی بخشی از فهم تو شده است با تحقق بعد بی زمان دانایی دیگری پیدا می شود دانایی که روح چیزها را نمیکشد روحی را که در همه چیز و همه کس حضور دارد دانایی که قداست و راز زندگی را ویران نمی کند. به همه چیز و همه کس عشق میبرزد و برای هر آنچه که هست احترام قائل است. دانایی که ذهن درباره آن چیزی نمی داند ذهن نمیتواند درخت را بفهمد. ذهن فقط اطلاعاتی را درباره درخت می داند ذهن من نمیتواند تو را بشناسد. ذهن من فقط میتواند بر چسب قضاوت اطلاعات و نظرها ها در باره تو را در خود انبار کند. فقط هستی است که بیواسته می شناسد. ذهن ابزاریست مفید. فایده ذهن در حوزه زندگی روزمره و عملی است. با وجود این وقتی ذهن بر همه جنبه های زندگی تو چیره می شود، از جمله رابطه تو با آدم های دیگر و طبیعت، حیولای مزاحم می شود، که اگر مهار نشود زندگی را به نابودی میکشاند و با نابود ساختن زندگی خود را نیز میکشد تو برای لحظی تجربه کردی که چگونه بی زمانه میتواند بنیاد فهم تو را دگرگون کند اما یک تجربه کوتاه کافی نیست مهم نیست که تا چند اندازه زیبا و عمیق بوده است آن چه لازم است و موضوع مورد بحث ماست مقیم دایم شدن در حریم حرم آگاهیست بنابراین الگوی کهنه و نخنمای نفی لحظه حال و مقاومت در برابر آن را در هم بشکن وقتی به فکر کردن درباره گذشته و آینده نیازی نداری توجه خود را از آنها برگیر تا جایی که مقدور است از بعد زمان خارج شو اگر نمی توانی به طور مستقیم به لحظه ی حال وارد شوی به میل ذهن خود نگاه کن که چگونه دوست دارد از لحظه ی حال فرار کند خواهی فهمید که آینده همواره در نظرت بهتر یا بدتر از لحظه ی حال است اگر این آینده خیالی در نظرت بهتر بیاید به تو امیدهای لذت بخش می‌دهد اگر این آینده خیالی را بدتر از لحظه ی حال تصور کنی دچار دغدغه و استراپ می‌شوی هر دوی این تصورات وهم محضند از طریق مشاهده خیشتن حضور بیشتری پیدا می کنی. به محزان که در میابی که حاضر نیستی ناگهان احساس می کنی که حاضر هستی. اگر بتوانی شاهد ذهن خیش باشی دیگر به دام ذهن خیش نمی افتی. انصری تازه وارد زندگی تو شده است. انصری که در ذهن نیست انصر حضوری مشاهده کننده به عنوان تماشاگر ذهن خیش حاضر باش تماشاگر افکار، عواطف و احساسات و تماشاگر واکنش های خود در موقعیت های گوناگون باش حداقل به همان اندازه که به شرایط خود توجه نشان میدهی به واکنش های خود نیز در این شرایط توجه کن ببین ذهن تو چگونه مدام به گذشته یا آینده آنچه آنچرا که مشاهده میکنی مورد قضاوت و یا تجزیه و تحلیل قرار نده. افکارت را مشاهده کن. عواطفت را احساس کن و واکنشهایت را ببین. از آنها مسئله نساز. تو به چیزی را احساس خواهی کرد که از همه اینها نیرومندتر است. حضوری مشاهدهگر و آرام که ورای محتوای ذهن نشسته است و تماشا می کند. باید در شرایطی که موجب برانگیختن واکنشی عاطفی از جانب تو می شود، حضور پررنگ داشته باشی مانند شرایطی که کسی باعث می شود تا تصویری که از خود ساخته ای مخدوش شود در چنین شرایطی تو میترسی و دست به هر کاری که میزنی غلط از آب در میآید و یا اقدهی که از گذشته ها در دل تو مانده است سر باز می کند. در این شرایط دوست داری ناآگاه باشی واکنش تو یا احساساتت بر تو قلبه می کنند. تو عین واکنش خود یا احساساتت می‌شوی. ادا در می‌آوری، توجیه توجیح می کنی خطا می کنی. حمله می کنی. دفاع می کنی. اما تو نیستی که این کارها را می کنی. بلکه الگوی واکنشی توست ذهن است که از روی عادت میخواهد خود را حفظ کند یکی انگاری خود با ذهن به ذهن انرژی میدهد. دهد مشاهده ذهن انرژی ذهن را می ستاند یک انگاری خود با ذهن احساس زمان را شدیدتر می کند مشاهده ذهن پنجره وجود تو را به سوی بعد بی زمان باز می کند انرژی که از ذهن ستانده می شود به حضور تبدیل می شود وقتی احساس کنی که حضور داشتن چه معنایی دارد آنگاه به راحتی حتی زمانی که بخواهی و نیاز به زمان نداشته باشی می توانی از زمان خارج شوی و در لحظه ی حال زندگی کنی این کار توان تو را برای استفاده از زمان یعنی گذشته و آینده کاهش نمیدهد در مواقعی که به زمان نیاز داری می توانی بان با رجوع کنی و از آن در امور عملی زندگی خود بهره مند شوی این کار توان تو را برای استفاده از ذهن ذهنیز تضعیف نمی کند در واقع تواناتر نیز خواهی شد وقتی تو ارباب ذهن خود باشی، ذهن تو شفافتر، تیزتر و متمرکزتر خواهد شد